سوره بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اذا طلقتم ایسا فطلقوهن لعدتهن و احسل عده و الله ربكم به الله که بخشا جنده و با رحمت است ای پیامبر بگو هرگاه خواستید همسرانتان را طلاق دهید هنگامی که از عادت ماهیان پاکستان طلاق دهید. آنگاه حساب عدده را داشته باشید و حرمت عوامر خدایی را که پروردگارتان است نگاه دارید. نه شما هنگام عده همسرانتان را از خانه هایشان بیرون کنید نه آنها خود بیرون روند مگر آنکه خاور زشت آشکاری مرتکب شوند اینها حدود الهی است، و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خودش ظلم کرده است تو نمی شاید خداوند بعد از این فرمانی صادر کند هنگامی که مدتشان به سر آمد یا آنها را به خوبی نگه دارید و یا به نیکوترین وچی از آنها جدا شد و برای این کار دو تن شاهد عادل از خودتان برگیرید و همواره شهادت را برای خدا برپا نمایید این چیزیست که به واسطه آن کسی که به خدا و به روز قیامت ایمان دارد موعظه می شود و من یتغیره یجعل له مخرجا و من حیث لا يحتسد و من یتوکل على الله فهو حسبه به نانید هر کس حرمت خدا را نگاه دارد او راه نجاتی برایش فراهم می کند و او را از جایی که فکرش راهم نمی کند روزی می هرکس هر کس بر خداوند توکل کند او برایش کافی است خداوند فرمان خیش را به انجام می رساند. بدانید که خداوند برای هر چیز اندازهی مقدر کرده است زنانی از شما که یائسه شدهاند اگر در وضع قاعدگی آنها شک کردید ادهی آنها سه ماه است همچنین آنهایی که تا به حال قاعدگی ندیدند نیز عدهشان سه ماه است و ادهی زنان باردار این است که وضع حمل کند و هر کس حرمت اوامر الهی را نگاه دارد خداوند کار را بر او آسان می سازد. این امر خداست که آن را بر شما نازل می کند. بدانید کسی که حرمت خداوند را نگاه دارد گناهانش را میپوشاند و او را پاداشی بزرگ میدهد. هرجا هر جا سکونت اختیار کرده اید آنها را در حد توانایی خویش سکونت دید و به آنها آزار مرسانید تا تحت فشارشان بگذارید چنانچه باردار باشند نفقه آنها را پرداخت کنید تا وضع هم مایند و اگر فرزند شما را شیر دهند مزد آن را بپردازید و به وجه نیکو با یکدیگر توافق داشته باشید و اگر به توافق نرسیدید زن دیگری شیر دادن طفل را به عهده بگیرد هرکه امکانات خوب مالی دارد باید از آن انفاق نماید و کسی که تنگ دست است از آن چه خداوند به او داده انفاق کند بدانید خداوند هر کس را به اندازه توانایی که به او داده تکلیف می کند خداوند بزرگ بعد از سختی آسانی قرار خواهد داد چه بسیارند اهل هایی که از اوامر پروردگار و پیامبرانش سر باز زدند و ما حساب سختی از آنها کشیدیم و به عذاب بدی مجازاتشان کردیم. پس دستاورد اعمالشان را چشیدند و عاقبت کارشان زیان بود. خداوند برای آنها عذاب سختی مهیا کرده است. پس حرمت خداوند را نگاه دارید. ای خیرت که به حقایق ایمان آورده اید حقیقتا خداوند چیزی را که مایه پند و تذکر شماست نازل کرده است پیامبری به سویتان فرستاده که آیات روشن الهی را بر شما تلاوت می کند تا کسانی را که به حقایق ایمان آورده و عمل کرده نیک و دارند از تاریکی ها خارج و به سوی نور و روشنایی رهنمون گردند بدانید هر کس به خدا ایمان آورد و عمل کرد نیک و شایسته داشته باشد خدا او را به بهشت هایی که نهرها در آنجا ریز وارد می‌کند تا جاودانه در آنجا بماند زیرا خدا روزی ارزشمندی را برایش مهیان موده است این خداست که افتاد آسمان به همانند آنها از زمین خلق کرده است فرمان او پیوسته میان آنها جاری است تا بدانید که خداوند بر هر کاری تواناست و علم او بر هر چیزی احاطه دارد. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن الأمر بینهن لتعلم أن الله على شيء قدير وأن الله قد أحاق بكل شيء علما صدق الله العلي العظيم <تصفيق> <تصفيق>